یه تلفن از واسه کنم کیه یکی از ها چی می‌خواد شکایت داره میگه خونه که اجار کردن ارزشش کمتر از پولی که ازش گرفتیم شکایت بکن من نمیدونم ولی میگه باید ما با تفاوت پولش رو بهش بدیم راست میگه یه خونه متوسط اجار کرده توی جای متوسط ولی شاید صاحب خونه خوب رستگی نکرده من نمیدونم بگو بعداً زنگ بزن آخه یکی دو تا خانم چندتا تماس داشتیم امروز چندتا؟ تا هفته. 70 چه خبره؟ البته 70 درصد خیلی بالایی نیست تو هزار تاها. هزار تا؟ بله امروز 1000 نفر اپ ما رو نصب کرد تو گوشیش. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ ببینم که تو واقعا فکر کردی من کاره یا نه؟ خب آخه وقتی جلسه رو برگزار کردن خودت تو فکر کردم حتما هستین دیگه. ببین من نمیدونم خود پول باش حرف بزن و این کمی راضیش کن تمام برام یه زنگ بزنم ببینم چی میگه. باشه. سلام چه خوب از من تو رو میگرفتم تو اینجا چیکار کار میکنی؟ رونا حالش خوب نبود. من مجبور شدم بیارمش یه جلسه هم بود. به حرف زدم تو رفتی تو جلسه؟ آره رونا کجاست؟ گفتم که حالش خوب نبود رفت خونه جلسه با همون شرکت تبلیغاتیه بود آره گفتم مدیر فنی شرکتم تازه سرخود گفتم از اپ ما استفاده کنین تبلیغ برین چند درصد به ما میرسه؟ 20 درصد گفتم 20 درصد کمتر از 60 درصد حرفشون از این <تصفيق> سلام خوبی سلام آقای نظری چی خواین سلام سلام فقط اومدم بگم دختره شکایتشو پاس گرفته لطفاً اینی آره مطمئن. باید بعد نگران خانواده‌ات باشی پسر اومده این جهل چی از دهنش در اومده به خاطرت گفته کام یارم از نگو خب باورت نمیشه از اینا بپرس نمیدونی چه حالی داشت خیالش باد خدا افس تصور یافت داده والله حقيقتش دیروز که شما تشریف نداشتین آقای جوامردی اومدن بعد یک کم با خام نظری بحثشون شد حتی حالا خام نظری بد شد ما زنگ زدیم اورژانس اومد ولی خب خودشو چیزی نبود خیلی بهت زحمت دادن چه چرفی آقا شما همیشه به من دوتو داشتید دستموز به من هم که همیشه به موقع دادیم دستموزی که من به تو دادم قدر کمک و زحمتی که برای من میکفی نیست میخوام یه خود پول بریزم به حسابت میشه شماره کارت تو بهم بدی آقا اگه اشکال نداره نقدی بهم به بدی نقدی نداره کارتی برام آسان آقا کارت هم گم کردم این مدت هم متاسفانه هم وقت نکردم برم کارت جدید بگیرم حالا عجله یا نیست هر موقع گرفتم شما رش رو براتون میترستم الو مرتضا سلام چطوری؟ خوبم. الحمدلله. جهار. چه حال چه باشه باشه یه سر بیام اونجا خدا حفظه منو تا ماهی سرامی بریم الان آقا آره یه اتفاق افتاده باید حتما یه سری بزنم اینجا بستش آقا من جایی الان قول دادم چیه یه از کمک کردن به من خسته شدی این چه حرفی آقا پس منو ببرو ماهیسورا کشم خیلی برام سخته که ماشین بگیرم کارم داشتی دیروز بهرامی اومده بود به کارگراش اینجا لشکر کشی کیچی می گفت که ما جمع کنیم و ماهی سرا تحویل اونا بدیم تا مشغول شدن مگه مالکیت ماهی سرا رسما به نام اون شده اینطور می گفت بس اون بالا گرفت ولی فایده نداشت تا اینکه خانم جوامردی یه چیزی بهش گفت که مجبور شود بره چی گفت گفت رقا در اون به سامان گفته اون گفته سامانم به بهرانی گفته در واقع خواه نسلی اون آقا همین آتیش وقت اون بلن میشه اگر رقا موزایی در نمیگفت اینطوری نمیشد شادی به نظر دختر خوبیه اون تمام سعیشو میکنه که به ما کمک کنه این روزا آقا همه نظر خوب میرسن ولی باطنشون یه چیز دیگه است شما باید خیلی دقت کنید شاید ناخواسته از ذهنش رفته سامانم رفته اون مردک بهرو گفته من خودم باید با شادی صحبت کنم بران کجاست از صبح که نیومده فکرم نمی کنم دیگه پیداش بشه فکر شادی زده و احرامی دیگه رسما نمیتونه ادعای راجبه اون زمین داشته باشه منم از فردا شکایتم رسما شروع میکنم تکلیف مایی سره چی میشه آقا خودت موازه همه چی باش همه چی رو زیر نظر داشته باش چشم آقا ریالتون راحت های جدای خیلی رو, رو زدی پسرش رو پشتی. باش رفت دیم بر اون بر آدم انقدر پررو چه بله این خواهی سر بدبخت به تو مرگود نیست تو اصلا کامیاره کجا میشنسی ها برای شکیپ من دادی بهش کامیاره بچه مهل من قصتش بتونه میخورم شان سابردی گفته کار به کارت نداشته باشم و یعنی همینجا جلوی گوهی آقا پشمان از همین درخت ها ویزونت میدارم آره. چی شده؟ تو با میگی چی شده؟ نمیفهمم چی میگی این آرش به چی گفته که حالت به خورد چی؟ به من دروغ دروق نگرونام فکر من نمیفهمم نه؟ کامیار به ترفی زده جواب منو بده! آرش به چی گفته؟ جریان چیه مادر؟ جریانی نیست اسمم معلومه دیگه کامیار توبار باره مزخرف گفته مگه فقط کامیاره؟ اونجا نیما و معصام هستن شاهدن خب بابا یکی به من بگه چی شده؟ نمیدونم این متی که دوزار آراش نمی چی بهش گفته حالش بعد شده زنگ اورژانس اومده راست میگه رونا اورژانس ببینم چی بهت گفته هیچ یه چیزی بین خودمون بوده بین خودتون کارت به اورژانس کشیده بابا یکم کمی یواش تر بابا میشنوه بابا نباید بفهمه خب اول بذ ببینیم گریان چیه اون دفعه که میگفت یه مشکلی داره بین این دوا رب داره نمیدونم. خب سر چی دعواتون شده؟ برای چی سر داد زده؟ هیچ چی, چی دیگه، ما میگم چیزی بوده بین خودمون. خب الانم خودمونیم دیگه. من مادرتم، اینم بردارته. تو رو خدا فراموشش کن. چی چی فراموش کنی؟ اومده هر چی از دهنش در اومده بهت گفته. هر چی بود تموم شد و رفت. دیگه اسمش هم نمیخوام بشندم. خیالتون راحت شد؟ آخه واسه چی مادر مگه چی شده؟ خب بگو ببینم چه اتفاقی بینتون افتاده. آرساد زیر چی؟ غلط کردی. یادش رفته چقدر التماس میکرد؟ کرد؟ چه دیگه؟ ول کنیم چی بس ول کنین فراموش کنیم من حسابشو میزنم کف دستش نمیخواد بیخوادی بری سراغ اون منو ثبت بکنیم گفتم دیگه کاری به کارش ندارم یک هماروم شدی بیا بیرون بابا شک میکنمش نشستی تو اتاق سلام رامین من رونان. حالم ببینمات. سلام آوجا. سلام اومد. شادی. شادی. بله داداش. یه دقیقه میای تو اتاق من کارات داره. شرافتی تو شرکت زدی که رقم مزایده رو تو گفتی. آگه بهرامی با کارگراش اومد شرکت شرکتشام همه ما رو مینداختن بیرون. تو چه ربطی داش؟ قاسم خودش فکر میکرد؟ تو برای چی به با آقاسم کمک میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا نمیفهمی؟ من مجبورم. منم مجبور بودم. با سوسام شام دادن بیان دو خار. آلامیمم. چی داشتین با هم می‌گفتین. ما هیچ چیز چیزی نگفتیم. هیچ‌کینی نگفتین. <تصفيق> نه مادرس... <تصفيق> بهرامی با کارگراش اومده بودن شرکت داشتم ما رو میداختم بیرون منم گفتم من رق این مضوع در رو گفتم میخوااستم اشتباه هم جبران کنم. اشتباه کردین کار کردی. اشتباهی نکردم پنهون کاری کنه یه وقت پنهونکاری لازمه به خاطر کسایی که آدم دوستشون داره پنهونکاری کاری هیچ پاییده نداره. بدتر باعث میشه آدم به دورغیی بیفته بهتر که از زبون خودششننیدم الانطور میکن اینا سامان با هم هم دست خودم جفتشون زه بهرهون کاری حالت میکنم بگن سلام بابا جان سلام بابا جونم حالت خوبه؟ الحمدلله خوبم بابا ولی صداد که میگه خوب نیستی تو رو خود اگه توری شده به من بگو بابا نه بابا خوب هم. از قاتل خبری شده؟ نه بابا یعنی چی؟ یعنی آب شده رفته تو زمین؟ حالا خیلی هم معلوم است که اون باشه مگه خودتون نگفتیم برای انتقام اومده؟ آره گفتم ولی دلیل میشه که قاتل پشمان اون باشه بابا حیف پشمان بابا حیف نمیدونین چقدر دلم براش تنگ شد من هم همینطورم بابا وقتی این ساعتهای که میشه حسابی آشفته با بیقرار میشم بسید که همون جلال تو بابا من باید خدافزی میکنم آسن یه عمرتی بهت بدن با که تو عمرت نفرده باشی میگم جلا جانا تو هر شب پامشه میای پیش من میترا زنت از دستت ناغرد نمیشه او از خداش هم هست دیشب با همه دوستاش رفته بود سینما امشب با همه دعوت کرده خونه نه ترس تنها نمیبینه خدا بیاموزه همه سرم رو قدی زنده بود با میترای توخ هر روز بیرفتن این برم وقتی که مرد زندگی ما هم میگرسم پاشید امید من به این دوتا وکه بود که سرنوشت پسره کم پیجمانمون شد قاسم جا انقدر فکر رو خیال نکن اتفاقی که افتاده تو باید تمام حواست رو بدی به دخترت شکر خدا نبدارم که شدی زندگی همینه. واسه میگم یه دو تایی بریم سفر حال هوای عوض میشه. من هم خیلی خستم. مرتبو خیریه جونمو گرفته. نمیتونم چرا من باید بفهمم حرف این پسرک چرا درسته. ما هم اول داد پلیس خبر میدی. اصلا به تو چه تو که پلیس نیستی همیار این بره ولی کارا میکنی. تو چرا حرفای منو نمیفهمی چرا؟ من مطمئن نیستم که این پسر سامان قاتل پسر منه چه نمی فرمی؟ اصلا کرده رفت داد امال ماهی سرا مزایده رو به گم کشیده خود کی نداشته؟ مگه تو کاری کرده نمی‌دونم نمیدن حمیرم از شانس بعد منه من موندم. تو کم عقلی کردی به پلیس خبر ندید آرش شریع کار نکرد من روز کار داشتم اگه با آدماده بودم الان سامان دست پلیس بود میگونم اگر باشه پولیز رو از من تو سر بیگان ها که بالای دار نمیره جلال اگه به یکی بگی که شماره کارت تو بده من میخوام پول به حسابت بریزم بگم نه تو چی فکر میکنی؟ بایکو برام که میگم مالیات نده برو بابا واق وا آماده چیکارم داشتی چرا نه دفتر من همینجام نمیخواستم بیام انقدر اصرار کردی اومدم پرسیدم چی داشتی من که شکایتام پس گرفتم برای همین گفتم بیا چرا یه شکایتت پس گرفتی هرچی واسه تو چه فرقی میکنه که من چرا شکایتام پس گرفتم فرق میکنم نخواهم دلیلشو بیدن واسه همین کار مسخره منو کشمدی اینجا سابقه خایش بک. ما حمداله شبر. مهمه مادر. آبت با آرش. میدونستم در مورد آرش خیلی ازم سوال بپرسید. نه این موضوع ایچ رفتی به آرش نداره پول نداره گفتم نه به آرش رفتی نداره خب پس برای چی هشگاه دو بز گرفت اینش دیگه به خودم بربوطه حتما آرشی پول درسته به بدده که راضی شدی دیگه نه ببین اون بیچاره هم از این ماجرا خبر نداره. گفته من چیزی نگیم بذارید یکم چشاتو باز کن دور وریاتو بهتر بشناس ببینم رو بینیم تو محصه رو بیان محصه برشی بکالت دیگه یا جا ببینیم چیز فقط فردا بریم من گیرم به جونتو بریم امرو فردا و برم آقا کارت ملیم امروام نیستش باشه میریم خونه برمیداریم برمیداریم کلن کارت همون دادم تعویض الان کارت ندارم من چرا به اون نمیاریم تافه پیش گفتی کار دارم معلوم میگی کارت ملی نیست. خودش تو هیچ کاری اسفند نمیخوای نمی‌خواد بکنه. دمت گرم. خدا وکیلی میخوام براش کوکی کنم. به جون امیر میخوام جدی میگم. ولی کاری که میدونم اشتباهه رو نه. من ازت نظر نمی‌خستم. من فقط گفتم کمکم کنم آقا این کمک نیست. الان تو تو این وضعیت ول کنی بری خارج از چاله درمادی اومدی افتادی تو چه؟, چه از این بعد داداش من تحت تعقیبم. یه نفر آدم نیست شادت بده من مشه برنامه‌گیشتم شرکت. مجید من رو بگیرن اعدامم میکنم میفهمی؟ چرت و پرت نگو هم واه. الکی که اعدام نمی‌کنن آدمو. بعد تو الان اینجوری ول کنی برید نامزدت هم از دست میدی. نامزد ندارم بش خدا. چی شد؟ وایسا وایسا ببینم. وایسا. اون دختر بیشاره اینقدر داره به خاطر تو بدو بدو میکنم ما گفتم ولش کنی بری. دوستت داره امیر؟ تو هم دوستش داری دیگه. میدونیم با یه کار احمقانه خواهش میکنم همه چیزو خراب نکن آقا ببین من هستم من کمکت میکنم نامزده هم هست کمکت میکنه نمیذاریم همینجری بیگناه محکومت کنم تو میخواه کمکم کنیم؟ بری محضر من میخوام کمکت کنم اما محضر نمیام چون میدونم اشتباه پس خیلی منو رو با بخواید باش خدا بست امیر داری میری علا امیر باشه. من من خونه خونهام بفروشم. اوناتون کجاست؟ همین کوچه بالایی خونه آجوری در اون خونه قدیمیه؟ مثل چند تا الان اونجا. اونجا حدود 4 تا. بیشتره. بیشتر چند متر خونه‌تون؟ 50 متر. من متر میشه تقریباً 200 تا. قیمت خوبه گفتم، کارت راحت. من پولشو زود میخوام الان مشتری نیست. میرون حتی فروش نمیره یکم عجله دارم به خطور نمیگم عجله داری که بعد زیر قیمت بدی چقدر مثلا زیر قیمت مثلا صد و خیلی کمه یه زن انصاف داشته باشید مشتری نیست من هم دست بنا بگیم صد اشتاد که برمان خوب باشه برای که صد بدید دو سر روزه میتونم سرادی پشمان کنوال که دیگه باشی موشتری بودم توی این چند روزه مشتری عدیف کنم سمت بزنم. فقط من داره که همورو تونمت چک کنم سفارش جدیده نمیخواستم دیگه خودتون تا سر را بیایید این بود که خودم اومدم مزرم شدم خدا بیا مرز آقا پیجمانم خدا رحمت کنه رفتگانتون حیفه اون همه آقایی و معرفت و اخلاق یه دونه بود دیگه لنگش پیدا نمیشه حالا وضع مایسران چطوره بد نیست تا وقتی که اون خدا بیامرز بود خودش میدونست چی کار بکنه ولی ما هم همه ای صحیمونو دادو... می کنیم این اصلاح دو باید میدادی به خانم جوان مردی اون اینها را رستگی میکنه چرا اولی برای من تا اون هستش میتونید باش همکاری کنید که کار مایسه را بچرخه از روزی که به احلامی اومده جلیه همه گفت که چی کار کرده دیگه هم برای پیداش نشده چون هم میدونه خیانت کرده دیگه روش نمیشه اون برای بیاد همه میگن دستش با سامان تو یک تاسته بوده ما هم نقشه ریخته بودن که رقم مزایده رو به بهرامی بدن لابد بهرامی هم پول خوبی بهشون نده این حرفا درست نیست این حرفا رو نزنید اگه این حرفا درست بود نمیمد تو ملعه عام به همه چی اقرار بکنه با پنهان میکرد جسارت آقا از کجا مطمئنید؟ از اونجایی که این زن با شجاعت جلوی همه اشتباهات خودش رو اعتراف کرد اگه حرفهایی که اون زد نبود بهرامی تا حالا صد باره ماهی رو ما رو خودش کرده بود این زن از حیثیت خودش ماهی گذاشت تا ماهی برای ما بمونه نمیدونستم نیومده من باید بهش زنگ بزنم جواب نمیده؟ عادس خونه شو نداری. داری؟ باید تو فرم استخدامش باشه خب زنگ بزن مایسرها به یکی از بچه ها بگو برن پروندشو در بیارن عادسشو و ست بفرسته چشم آقا الو کریم برو تو اتاق اداری توی فایله استخدام این فرم استخدام خانم جامردی در بیار رو پیدا کن واسه من بفرست باشیم منتظر باشت با کیه؟ منزل شادی جوان مردی. شما؟ من قاسم شریفی هم. بفرماید تو. علام خانم بری خبشون آقا غاسم آمده اینجا خودمم شوکه شدم نمیدونم چرا اومده آره تو نیه من خودم بهت خبر میدم خانم حتما میدونید که دخترتون چکار کرده بله؟ خیلی هم شرمندم این دختر رو من بزرگ کردم بچه من حلال حروم سرش میشه باور کنین آقای شریطی که اون رقم رو عمدن به سامان نداده من اصلا نمیدونستم سامان از شما و کینه داره که میخواد به رقم به احرامی بگه باور میکنم چون هیچ کس نمیدونست تو تو این مدت همه ی رو کردی که کارها رو جور بکنه همین که اون مثلا افشا کردی خودش کار مهم میه کمترین کاری بود که میتونستم بکنم من اومدم که ازت خواهش کنم که برگردی به شرکت بدون تو کار اونجا لنگه من روم نمیشه جل کارگره اون همشون الان فکر میکنم من خاینم تو کاری رو که من میگم انجام بده و مسئله خودم درست میکنه فعلا مهمترین مسئله چرخیدن چرخ شمایی سراست با بهرام میخوایید چیکار کار کنید؟ بهرام کاری میتونه بکنه رفتم علیهش رسمن به مزایده شکایت کرده چایی ما است من بیارم خدمتتون خانون زحمت نکشید من باید برم اختیار دارین یه چاییه من باید یه بار دیگه سامانو ببینم هنوز نمیتونم حرفاش راست بود یا دروغ بود متوجهم. اما من بهتون قبلا هم گفتم سامان جواب منو نمیده یه بار به هم زنی زد اونم فقط میخواد حال شما رو بپرسه من مطمئنم تو میتونی یه کاری کنی که من دوباره ببینمش تو میتونی ق risks صدام نون گرفتی؟ یادم رفت ماما ایت نداری خودم میرم خدا میرم میگیرم نه مادر یه هم خرید دارم خودم کار داشت میخواست منو برگردون شرکت چیزی که از من نفهمید نه نه میخواست دوباره سامانو ببینه حالا میخوایش کار کنی نمیتونم بهتر خواستمو ببر پیشش سامان داره میره کجا؟ میدونم قبل اینکه بره این کارو بکن این پیره مرده بیچاره گناه داره شادی اون دفعه که این کار کردم سامان خیلی از دستم ناراحت شده بود بیچاره تازه به سر دست داده الان فکر میکنه مرگ به سرش به گذشته خودش مربوطه نه بلیش فکر رو سلام سلام داریم این شرکت. آره مامون هنوز خوابه یکم به هم ریخته است نگره دفعه این مدت خیلی فشار و ایسیاد بود من که نمیرسم تو یکم بیشتر حباشو داشته باش باشه آره تو دیگه نمیری دفتر کسان از رونا خبر داری؟ آب باش به هم زدم نمیتونستم بذارم پاس من بشه من زر نمشتم ما قتل کردم نمیتونم بذارم در گریه مجره بشه خیلی دوست دارم این راه از دست نمیکشه با کاری که من کردم دیگه فکر نکن واسه دلش بخواد منو ببینه. چیکار کردی؟ حرفای بعدی به سلام. ولی تو هنوز تو سشت داری. درسته؟ چه فایده؟ آخرش. در ضمن کیفم افتاده بودش تو شرکت. کی؟ همون شب. الان کجاست؟ مورتزا پیدا کرده بود. مورتزا از روی عکسی که توش بود و آدرس کافه عمو اسماعیل منو پیدا کرد. بعدم، ازم اخازی کرد تا اینکه تاجی تا, تا اینکه نمیدونم کیم چه جوری افتاد دست کامیار. هی وای. هی وای خدای من. من من نمیخوام اونها بفهمه من قتل کردم. اگه کامیار حرفی بزنی چی؟ نمیگه الان فکر میکنی من چه آدم بدی هستم نه؟ الان مهم اینه که ماجراج دست کامیاره میتونی رو حرفش حساب کنی؟ نه واسه همین شاید مجبور شم برم بری؟ کجا بری؟ نمیدونم هر جایی بداخلی ماجرا مخفی نمیمونه جاره ای ندارم شادی رجید چه بلایی بود سرمون من بعد برم شرکت به آقا سم قول دادم اصلا هستندرم نمیخواست برم واسه من تا اسکر اوتوبوس میرسونم دیدم <تصفح> یعنی <تصفح> ما خودم اون مشکل خانواده خودمون نمیتونیم حل کنیم اصلا بابا رازی ما یه همچین جایی باشه اسمم خدا بیا مرزا نیاد اکام بگم اصلا لزو میندر ما پاونوی همچین جایی باز بشه نه، حرفارو بهتون به قازی بزن بیشون بیشو. بیشو. بیشو. آقای قازی پدر بچه بیشتر از دو سال فوت کرده خواهر برادرش بهش اعتماد کردند وکالت دادن این آقام رفته زمینه پدری رو فروخته زده به کار سهم اونارم نداده خب من که نمیخوام سهم خواهر بردارم بخورم مهلت بدین تا چه وقتی که پولشونو رو میدم؟ چقدر مهلت بدم مدام داره میگه مهلت بدین هیچ کاری هم نمیکنه چرا سهم خواهر بردرتون نمیدی آقای قاضی من که نمیخوام سهم کسی یه بخورم ال از شما خواهش میکنم شما به مادر بگید به من این فرصت رو خانم شما این مهلت رو بهشون میدید؟ نه خیره خواسته دیگه مهلت نمیده. بالاخره بهترین قضیه بین خودتون دوستانه حل و فصل بشه. برای خودتونم درست نیست. اگه قرار بود دوستانه حل و فصل بشه که ما اینجا نبودیم. ماما من دیگه خسته شدم هیچ مهلتی نمیدم. اصلا من هیچ کارم. زنگ میزنم خودشون بیان ازش از شکایت کنن. اگه چولنا کنین پرونده میاد دادگاه. بفرستید آقا. بفرستید, بفرستید دادگاه. منم گفتم الان واقعا نمیتونم. با این حساب پرونده تو میرجا میدن به دادگاه ماما دیگه دوست داری کتا بگم ماما چوبت نم ها یکم دیگه صحب کن خب من را ناییم صحب کن سلام آنا بخشت چرا قاتلی؟ دادم برای کسی که دوست داشترام خیلی تنگ شد. آقا چرا دستت باید کنم. من پسر اون هم که سکس دادی همین می‌فهمم می می می شما قاتل. چرا اینقدر می‌تونه کشیف باشه؟ بازی می‌دی. فکر می‌کنی نمی‌فهمم؟ بولتماس شما تو یاری آه در جریان بود. زل زدم به آسمون کم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون بارید دستای خون پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونه شول شدن گفتم این یه ماجز است خیله شد به آسمون همه ستاره ها دونه دونه گل شدن مهربونی نازنینی ایش آخریم دیگه یم جورچینی ایش مهربانی ایش نازنینی ایش آخریم دیگه یم جورچینی ایش باد بادکم و یه جوری با میکرد که تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری نم کرد که میشد دریا رو مثل یه یه نفس سر بکشم من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خدافزی یه تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای یش نازنی آخرین تیکه